اختلال بعدی اختلال عمل کرده از کفه لگن هستش که میتونه به دو شکل تظاهر پیدا کنه یکی بی اختیاری ادرار و دیگری بی اختیاری مدفوع بی اختیاری ادرار بیشتر خودش رو به شکل عدم توانایی در کنترل ادرار نشون میده و میشه گفت که شایع ترین مشکل ادراری در دوران بارداری و پس از زایمان هستش مادر ذکر میکنه که قادر به کنترل ادرارش در مواقع خندیدن، عدسه و سرفه و هر وضعیتی که فشار داخل شکمش رو افزایش میده نیست از کف لگن نقش خیلی مهمی را در حفظ فشار در مجاری ادراری ایفا میکنه در صورت افزایش فشار داخل شکم، فشار این مجاری بالاتر از حد طبیعی میشه و همین هم باعث میشه که ادرار به بیرون نشت پیدا نکنه. در صورت که این ازولاد شل و ضعیف بشن، بی اختیاری در کنترل ادرار در افراد ایجاد میشه و شیوع این اختلال در اواخر بارداری تا چهل درصد هم گزاره شده. و دیده شده که در خانم های نخست زا نسبت به خانم های چنزا از بیشتری برخوردارد. این اختلال در اکثر موارد پس از زایمان مشکل برطرف میشه مگر اینکه مادر در روند بارداری تمرینات ملاسب جهت تقویت عضلات کف لگن رو انجام داده باشه یکی دیگه از مشکلات ادراری شایع در دوران بارداری و پس از زایمان تکرار ادرار هستش که خودش رو به صورت دفع ادرار بیشتر از هشت بار در روز نشون میده که با ورزش کردن و تقویت از اولاد کف لگن و مستانه این اختلال هم قابل پیشگیری هستش. ضرورت دفع هماشکل دیگری هستش که ممکنه مادران باردار ازش شکایت داشته باشه. اگر به عبارت راحت تر بخوام تعریفش بکنم این که مادر میگه تا به دستشویی برسم ادرارم میریزه و برش کنترلی ندارم این اختلال در اثر اختلال در عملکرد عضلۀ مثانه ایجاد میشه که وقتی مثانه بیش از اندازه متسع میشه عضلۀ به خوبی عملکرد لازم رو نداره و همین ابواس بی اختیاری ادرار و خروج غیر ارادی ادرار میشه